حوزه نقاشی نویسنده حامد محمدی کارگردان مازیار میری بازیگران، شهاب دین حسینی رضا. بنده که هفته یادم را بنده که هفته دین نگار جواهریان مریم همه بچه ها بعد شب پیش پدر مادرشون فرشته صدر و رفایی کریمی نازم مدرسه اینا رو ممانی تا برده ها الهه گفت امروز اومده بود اینجا سپهراد فرزامی سوهی اصلا به چه اجازه ای دست تو کردی تو کیفمم موسیقی متن سعید انصاری. تهیه‌کننده منو چهره محمدی رضا با نگاهی معصوم و دهانی باز که گاهی به سمت لبخند میره مریمو نگاه میکنه مریم نگاهش رو از رضا نمیتونه بگیره انگار برای اولین باری که رضا رو میبینه رضا با این نگاه مریم با شرم این زیر پوستی دستشو با آب دهنش خیس میکنه و نرم سرشو به طرف دیگه میچرخونه و جلوی ماهاشو صاف و صوفی میکنه خودت هم آدم بعد کار کنه، مادر و کار کنه، من کریم زاده. ببین، اونجا رو بده توی کلاس تربیت حزیره. ببین چقدر تو کوچش شد ببین. درست کن من برم. کریم زاده. مگه من نگفتم میام؟ من خودم مگه شما رو بذارون من. این امضا کنم منادرین، عزیز دلم. من امضامو کردم. نگاه کن این امضای من. چهار تا امضای دیگه میخواد امضا رو بشی من به بگیر. کارام برسم برم. شلوغ نکن امزار امزار برات میگیرم خب اینارو امضار میگیرم میارم بعد ببین نگاه کن این زام از کس های خودینه اونم مثل تو همین برگرد امضا رو نشسته شلوغ نمیکنه تا من امزار رو براش بگیرم این 200 و این شیرو کیک رو من میگیرم وقتی نگاهشون واس تو هم گره میخوره خودش خودشو جمع میکنه اما نگاهش از رضا برنمیاد یه اتاق سمیمی و قدیمی دو تا گلدون روی یه چهارپایه که غرق نورن از نور تمیز صبح که از پشت پردای توری سفید حجوم آوردن رو صفری کوچیک صبحونه که وسط یه قالیچه کهنه پهنه یه تاقچه کوچیک که به دیوار پوشیده از کاغذ دیواری دود گرفته تکیه داده همه چی جمع پس چرا ریشکی نیست؟ صاب خونه ای یکی اومد مریمه با یه آپاش سفید میره سراغ گلدونا ساب خیر رزا صورتشو با حول خوش میکنه و یه سکندگی کچولو هم میخوره. جورا ما, ما چه مریم چه خوشگلم؟ بنفش به رنگ فرگای یکی از گلدونا ایه همرنگ روسریش این دوتا به چی میخندن؟ اونم با هم رزا پاورچین پاورچین بعدم چهارده دستو کجا میره؟ یکی هنوز تو رخت خواب خوابه رزا به مریم اشاره میکنه که ساکت باشه اون وقت از پایین رختخواب خواب لحاو بلند میکنه و پای جورا بوش یا قلقلقی میده مریم میدونه سمتشون رو لافو داره پسر بچه یه زرخت خوب می میدونه رزا موچی که پاشو میگیره پسر فرار میکنه مریم یه پای دیگه میگیره بلغره پسر فرار میکنه و میره سمت دستشون مریم و رزا کنار رخت خوب میشینن و دویدن پسر رو تماشا میکنن و صورتشون قلب خنده آخی مریم جلی ماهی رزا رو درست میکنه و چشم تو چشم ته دل رضا از تو آشپسخونه رادیو رو روشن میکنه. مرگ هم صورت رو تو روشلی میشه با دست فییسش این ما شما ردب میکنه. رضا تو آاشپخونه در حالی که گوجه فرنگی ها رو روی کویل تا میچینه و ساند ویچار رو درست میکنهطایی صبحگاهی رو همراه به اونجوری رادیو انجام میده. رضا سر سفره داره برای صحل لقمه می و دو پایه بنده. بلش کن بزرگ شده دیگه مردی شده واسه خودش یکی دیگه هم بگم من جا زنگ میزنم آژانس میگه آقا ماشین داریم میگه بله دانی میگه ای خوش باله تو منادر نداری گندیه منو نسیتم آره اینا زبل میاد داره توخه ساهل بابا همه صفحون از تو تبا خوری بابا باشه گربونه خیبا بونم خاطراتش از شیم موازه باشه مریم بودا الان دوباره بودا بودا خواهی مریم از توی یه شیشهی که پره از دکمه هست چند تو دونر رو میرزه کف دستشو دونه دونه نگاه شون شما بینیدی رو که میشه من خودم جمع می خب ببینید صحیح. این پر بیشه. این هم میتوانده ویژه اینجا به اینجاست سپاشه تو ایلوها بیا دو تا بذار رسو برای سوهیل پول میذاره و مریم بندی کفش رو میبنده و کفشو آمادن برای پوشیدن همه بوده رضا مریم از رو هوایی به سرعت رد میشن تا <صحیح> <صحیح> ای بایستا ده همی طور داره میره میگوست داره میره و رضا و مریم دنبالش میدون للاخره سب مریم کنار زن بارداری نشسته و چند تا دکمه آبی و صورتی رو که از خونه برداشته کف دست زن میزه اینا برای لباس بچه <تصفيق> همینطور که راننده به ماشینا فوش میده ریزا با جان و خنده ویراج اون رو از کنار مینیبوس دنبال میکنه زن حامله که یه تکه تو دستشه با تحجیب خیلی کار مریم نگاه میکنه مریم سرشو میذاری روشی که همیزن امال سوهیل ما بچه میخواستیم چی کار آخیه ولی محترم سوهیل نعمت اللهی روی پاکت نامی نوشته شده که دست سوهیله ده دسته اینه کشم که کنده شده از لولاش زنگ تفریح چه سوهیل بیرون رفته سوهیل کنار پنجره تو نینککش تنها نشست و به اینکش نکامه از تو تبرو نداشت خانم اجازه از اول سال اینجا جای ما بوده همه میدونه نمیرالی هم میدونه خب که دربا نداشت و خانم عزیزی میگفتی نه اینکه خود سب خانم آقای اجازه آخه این پس آخه نداره اینکه تو درمان خود هم بودو هر یاد سوهیل ساندویچش رو از دیرمیز بر میداره و یه آلمه برقه های قرص از زیر دستگاه پشت سر همیان بیرون. رزا همراه با چند تا مرد دیگه پشت میزی نشستن و برقه های قرص داخل بسته ها میچینن. مریم هم سر یه میز دیگه درست روبروی میز رزا همین کار میکنه. مریم و رزا هر چند دقیقه یه بار به همین نگاهی میدازن و لبخن میزنن و برا هم دست کن میدن مریم با اون چشای ریز و لپای گلی و چتری مای سیاهش که تو پیشونی شیخته همونطور که کارشو با دقت انجام میده خنده از او لباش لباش کمرنگم میشه حالی که همه مشغول کارن یکی از همکارای رضا چند تا بسته قرص و اوچی یه باشکی باشه آقا سلام بیاینه ممنتی دستو چما درد نکنه چه هم چقدر سخت بودی نیازیه درد هم مانده سرشگه درد سلام برد تو دفعه دستو درد به رزا سعی میکنه کنی چیز حدود 20 تا تا وسط مقوای قرصو که روی همچیده با هم بلند کنه و تو سبدایی همه بچین از اون طرف مریم هوا شو داره چند تا بسید می که بیوبتن رزا با تمرکز سبداید بالاخره بلاخره موفق باشه که اون رو توی سبدایی بچین با صدای زنگ همه کارگرها تو هر مرحله از کارشون که هستن دست از کار میکشن و راهی میشن. اما مریم و رضا سر جاشون نشستن و در حالی که دارن کاراشون تموم میکنن انگوشت اشارهشون رو به سمت هم میگیرن و بعد میذارن رو سینهشون از دل دل میخندن رضا با اشاره به مریم میگه بریم قضا مریم هم موافقت میکنه دنیای اینایه اینا یه دنیا حیات مدرسه که بچه ها دارن تو سرکله هم نزنن سوهیل پا به دیوار منتظره بوداره پرویچ گاز نزن انویدن هم در حال خوردن سندویج کتله تو سوهیل یا کپلیت نشست میشه. خانم بیا. اگه آب نخورش هست باز بازنیم خانم, خانم. خانم که سوهیل رو درست کرده موچه زنگا دیشتر بگنیم خانم نوشه شده. چند بار مدرسه من نگیم آمان خانم ایدازه میشه شما کاری بکنیم برای دعوات نیست که نامه ندارم میخوانا جا به با مامانت صبح کنیم خانم ایدازه ای ای ای خانم نازم بین بچه ها میشه این سنگی که توی دریا چه البته دیگه از دون خانم نازم اما سوحه رزا بیدور در حالی که کفر پاش رو زن مکشیده میشه به سمت مشتری های سوپر آقا کریم میره آقا کریم هم از تو نمازه نگاه ازش برمه ترام بلد شنم آقا کریم دو تک شیر دو هزار و نوکتر بل گفتی یه روز دیر گفتی من پیر مرگم زدم قیمت ها رو ولش کن اینا در عوض میشن بیا آدرس. این مال آقای مهندسه اینا مال خانم عدتاری چر خدا آفر خانم کریمی یا همون خانم نازم که شیر و میوه و روزنامه خریده داره قبض برق رو از بین قبوز همسایه ها جدا میکنه و اعلامی های روی تابلو رو میخونه خانم کریمی خانم کریمی این تویت <متحدث> پاکتنامه مدرسه رو موچالی می‌کنه و وسط کتاب واشتیش می‌ذاره. اومده خونه خانم کریمی. سرعتش هم از حوا بیشتره. خدام داره می‌بینه. یه عالمه آشمی داره. حالا نگاه کن. ها مش فنامی رلی. صداش داره تو سر کوچه میاد. سون نگاهی با ترس و تردید به خانم کریمی می‌ندازه. خانم کریمی به سرعت و با اخم وارد آشپسگونه میشه و خریداشو میذاره و با, با صفحه نیازمندی و یه روزنامه یه راست میره سمت اتاقش خانم اجازه ما دیگه بریم نهار پیش همیر علی بمون اه. نه من خودمون نهار داریم یادت نره به مامانش بگی فردا بیام افسد و با پس نشی من خودام واسه سویل بنده کفشاتو ببر زیر پات گیر میکنه میوفتی یا یاونا شدینه کامل با هم ببینید سم چلفی نمون آره خدا خدا خرابش نکن رضا پول جنس رو که تحویل داده به دقت نگاه میکنه و میذاری تو جیبشو با دو تا پاکت جنس سوپری دوباره میره سمت خونه یه مشتری دیگه واقعا مرحبا به این دقتت آقا رضا برمی گرده در خونه رو که نیمه باز بود مرده مریم تو آشباسخونه ی و مشغول قالب گرفتن مایه کتله تو دست از این دست به اونترست بعد روشو صافرین کنه با و بعدش با یه انگوشی سوراخ وسطش درست میکنه علامت سوال با دقت و بیدونه ترس از جلز و بلز تو رو. همه ی کتلتا هم اندازن عزیب و غریب. در همین حال مریم کلمه به کلمه رو که سوهیل بلند میخونه و مینویسه آهسته با خودش تکرار میکنه منتظر سوهیل از تو کتاب کلمه رو انتخاب میکنه با صدای بلند میخونه و بعد تو دفترش مینویسه دفتر نقاشی مریم کنار بشقا به ملامین کتکتای سرخ شده است سمجردو. یه خونه کوچولوی قرمز روی تبهای سبز که بالاش یه ابر توپلی و پایینش رودخونه خروشان سمجردو. با ماهی قرمز سمت چپ زفن سمت دیگه یه درخت سرحال پر از شکوفه زیر یه ابر توپلتر و بالای رودخونه. است یه پروانه یه کچلوی قرمزم اون وسط برای خودش می چهست مریم رازی از این نقشو میکن سخت که بیشه مراقب باش مریم مداد و فشار نده رو کاغذ محاها. آه ها بزن اینم نوکش میشکنه؟ باز مداد زرد رو هم آروم می‌ذارم کنار بقیه. بر. خیلی برای اینکه الیا طبیعی جلوه کنه به خودش نون میده بیست. خوبه میاره تو سوهیل بهش نمره. سوهل چند بار از پشت اینه نگاهی سنگین به مریم میداز اما مریم مثل همیشه لبخند میزنی خوبه اون از نمرش راضیه خونده خوب. دفترش رو زیر بغلش میزنه و با یه قاشق چوبی میره سراغ کتلتا که توی ماهتابه رو گاز دوشاله رومیزی دارن سر میشن درخت چیه؟ نیوای گرد و قرمز عین لامپ وسط این همه برگ سبز. چه حوز قشنگی وسط حیاته. رضا با پاکت هویج و نون میاد. قرارمون چی بود؟ سلام شب باشه. شب بخیر. چی بود آقا تابا؟ به امام هشتومین کفتاره مرگ و نیستن که دیان و حیات دون بخورن شما به کفتاراتون باید یاد بدین سمه مرچه ها رو نخورن ما اینجا تو باخچه مرچه داریم کلی آقا رزا کرهی شد سه ماه دوباره زیر گاز قبل همه نریم گازش که خیلی باحاله کار دید خود سخته باش ولی تو چراغ داره ولی خیالت راحت باشه آقا شعباز گفتن همه یه جا میدن خدا کنه به ثام خونه؟ خدا دافر، خدا فر. همه سفره شنبه رو به روی تلویزیون نشستم اما سهله رو مبل قایدینه دو نفره نشسته. چیجیا؟ موقعی که وقتی کمک چشاد چپایی کمک کمک. <تصف> <تصف> خیلی خوش نیست ولی فر نکرده. همون پیش نه. نزم جوش؟ اصلا قشنه خدا دوباره دوباره تو دوتا شم سفید از اون شمای قدیمی سقا خونه تو دوتا کاسه سفالی آبی رضا با دوتا شم میاد پیش سوهل و مریم سوهل هم با یه چراق قوه دور رضا میچرخه و بالا پایی میپره مریم هم نشسته و با شیشه پر از دوکی اونا رو همراهی میکنه این رقص نورا از پشت پرده های توری از توی حیات که پر از نور محتابه فکری دیدنی ده. آدم هنوز تو رخت خوابش خوابیده pore pore در در دفتر مدرسه اجباری اجباری نیست خدا صبح خویل بابا تمام زبقه من اینم این میلی بوسه الان دوباره میده ای ایه انکیه می پول بگیرم اصلا به چه اجازه ای دست تو که از که فهمم آقه نوشته اجباری است زبقه بابا شفت همون تموم شده بود اما باید مکم کم پایی تا حواست باشه بیا تا هم خونک در بخو تا هم ساب بخیه بیداری ببین این ساندویچ کتله اینم هم اینجا. اینجاست باشه بیا این هم دوتا فقط گفت حالا گوله اینا هم هواست همه کارا طبق برنامه هر روز به بستن بند کفشای سوهیل و دویدان دنبال مینیبوس ختم سلام خانم معلم با در هم با گوشی تلفن همراهش داره قبضی و پرداخت میکنه ساکه مسئله تو رو کنیم سوهل از پنجره میبینه که مامانش تونتون از در مدرسه میره سمت دفتر مدیر خانم اجازه میشه ما بریم دستشویی؟ بعد اکبری نوات شریفیه بعدش تو برو. خانم اجازه ما نبیریم. مال ما خودیش هرشون. خانم اجازه واجبه. دارم میریسه ریوزی ما ممکنه بشتیم. در به دروایس هر وقت اکبری میاد برو. خانم اجازه دیگه خانم اجازه دی. بارو بشی سویل بشتیز رو سو تو قایم میشون تو دفتر رو میگار شما رو از وزید ببینن بازه به تحصیل سویل بشتیز رو صدرت بزید میخوام نعمت اللهی کلاس درست تو مخته درستان خیلی پایه مهمیه حتی تغذیه و خواب و تفریح بچه هم توی مهمه البته بگم آم ماله نشم میگه از اول سال حواسش فرده بله. سخته. من بالغ نیستم. خب، شما ببین تو بچه‌ها. خب، این کاریه که جنایتمهر سن دارم. سؤالم اینه زمینه منزلی ما با بتن منطقه به انجام. مرسی جان. هر مشکلی ببین یه خونه یچ. هواپیما رو مشکل رو گرفتاری. ولی فقط ریاضی خیلی سخت. اینو میدونم. اما من قول میدم که حواسم بهش باشه. من مثل به سر خودم باهش کار می‌کنم. خانگرینی که سهل و پشت ستون می‌بینه، به دو میاد و در دفتر مدرسه می‌ره. باچه یاموز خبره؟ خانم خدمات مدرسه با سینه چای وارد دفتر میشه و دار با مزی. <تص> در برگشت به خونه همراه مامانش پشت خطوت و آبر پیاده واسودن مریم پلاستیکای هویج و گوجه فرنگی دست رو و مخاد از خیابون رد بشه اما نمیتونه درسته ترس قدم میره جلو دو قدم هم سوهیلم واساده و ترس و درماندگی مریم را تماشون کن البته سوهیل قرب ناراحتی است. ماشینای های کوچک و بزرگ به سرعت می‌گذرد. یه مرتبه سوهیل به تنهایی راه میفتی که از خیابون رد چیم به جدبل بسط خیابون آروم. که میرسه بر میگرده و مامانشو نگاه می‌کنه. سریت کن میده و مید که مامانشو هم از خیابون رد کنیم دستشو میگیره و میکشه مگه نگفتم اجباری نیست الان که خوب شد اونا یکم منو دوست داشتم قطعه مدیرتون منو گوز کرد سوهیل مامان. ببین چی رزا با لباس نشسته سوهیل گرفته وسط پاهاشو با کاسه مسی رو سرش آب میریزه این موقعی که سوهیل نینی بود اون نخور اینقدر بچه مرد کنه و گریه می کنه گریه نکن شما کنفته باید همون تمیز بشن نه درست چه چشت رو من تو کم کم چشت نداری دیگه گوش نمی دی. من دیگه بگه شده بگم تو درستان میگم با حول یه ها داره همونو بازم تو درستانم دری بازم بگم تو درستانم دیگه چی میگه <تصفح> این چه تا رو پشتی؟ اینو بزن این آبیه دوختم خو خواهمی که اول هرکتر نه شیب کم نفیدی نه نه اینو اون بخ... خاطر مارکش یه ذره یه اینو تقریبا بخ... تو مایه های همونه ولی قیمتش بهتر ریزم اولاد همینه آره آره همینه ها برداری درست میشه وقتی سوهیل میشنه مامان مامانو دارن این صبح کتاب رو عصبانی میشه مانون اصلا نه سوهی چرا؟ بیا در کچه تشیز بگم بیا سوهی بیا سوهی بیا این شیطه یه با گفتم بریم شهر بازی هم هم که منو نخری با باشه قبول میری راه شخص خیلی اخشون خودم بیبرم از اون دن بدنش حالا ندا ها صحلیل به سرعت از پلای مترو میره پاییم یا نه ما ما گم میشه حالی که چشتون آدم میکنه بیا رو. تو. رومریم سویل رو تو به قلیش گرفته و مثل رضا با دللهره و سطح جمعیت مسافر مترو فقط به اطراف نار سوهل و رزا با پله برقی و مریم از پله ها داره میاد بالا سوهل و رزا به آخر خد بسیدن اما مریم کلی پله مونده که میاد بالا تو چون نیاد چرخ و فلک قطار برقی تونل وحشت یه آلم وسایل بزگو یه آلم لامپهای رنگو بارن ساین داره سوهیل و رزا و مریم تو صف سادن <سطور> سوهیل و رزا از دیدن حیجان هم حیجان زده میشن اما مریم میترسه و دست سوهیلو محکم تو دستش گرفته با هر چرخش وسیله بازی مریم نفسش میگیره و نگاهی به سهيل میندازه مریم دیگه نمیتونه نگاه کنه سرش رو میندازه پایین و دهنش بیشتر از همیشه باز میشه بالاخره مسافرای بازی پیاده میشن و نوبت به اونا میرسه سهيل و رضا میان سوار میشن و مریم که گوشه چادر چادرنخی دودی گلریزشو رو محکم گرفته و سمت لواش میبره رفتن مسافرای جدیدو نگاه میکنه بالاخره مریمم تسلی میگیره که بره میری کنار سوهیل میشینه و اونم کمکش میکنه تا حفاظشو محکم کنه بشی بشی بس بس بس نخوره سوهیل نسستا تسست راندی این میلی این میلی موزه باش موزه باش ای اها اها بیر پای تسست راندی مانکن تسست راندی نه نه نه نه نه چه های بپنی؟ نه روزا این این این سوئل. سوئل. نه. بیاست. بیاست. بیا سوهل بیا پایی بیا پایی با با با با با سوئل. سوئل. بیا شو ببینم از مماشونم بیا پایی بیا پاییی بیا پاییی باز حیات پرسایه یه خونه البته از نور بعدام خیش خسته شد سوهل به قه رفته زیر پتو و اونو تا روی سرش بالا کشید. مریمم هم پایین رخت خواب نشسته و کفشای سهل جفت میکنه رضا هم میره که کارتون بذاره برای سوهل دنبال سیدیای کارتون میگرده. مره هم اون کارتون رو با هم ببینیم سوهل من نبیرم آخرش چی شد آخرش چی شد بگو برام نبیدونم سوهل باشو ما. باشو با هم کارتاله رو ببینیم ببینیم بقیه چی شد نکو رضا به مریم اشاره میکنه که برگ ریازی هم نشونه سوحیل بده ببین چه خوب شد ریازی ناکا همش همش حل شد یه مجتری اماکری خرکرده خب بیا با هم نقاشی کنی بیا سوید باشه با ولم دیگه نقاشی کنی میخوای میخوای باها نقاشی کنی سهر بابا ببین با تمیز شو درست شو میخوره چربی آخریم میگه خوبی باری کاپسی بیشتر کنی عاشق سیش الان بذار مگه نگفتن فیلم من اونن شور الان بذار اما اون امیرعلی بود اون الان بذاریش پاش میومد بذار پاش میشه سهر الان اون درست شوش چی گفت پشوری درست شد سهر بذارش ببینیم خوب شو بده بده بده. ایه! ایه! همون گلدونی شکست که گلاش همرنگ رنگ و روسری مریم بود اینجی نه نه, نه. نه. نه. نه. نه. برو بر بر بر میره سراغ تلویزیون اما نگاش به مریم و سوهیل. بیا ما. ما نگاه کن نقاشی جلیتون میکرد بر این امرده به جایی خسته بود آقا اگر میگه رو مریم فقط داری می لرزه حتی پارهای دفتر نقاشیش رو هم جمع نمی کنه هم که لرزشش رو کنترل می کنه چشم از اونو بر نمی و تلویزیون خموش میکنه. کنه سویل داره گریه هم می گیره بازو پیشه عزیزه من عزیزه دلتو نیستم همه شابری آدم میبری از یحصا بازی ساده میتخلی یک کلمه نمیتونی من با با, با ما حرف بزنی بنا كن هر داتون دیبونه ای رزا زودتر از صحیل چشاش قرمز و خیلس شده اه. همینطور که دستاشو محکم به هم میماله با پشیمونی به مريم نگاه میکنه میخواد بره سمت صحیل اما وای و صحیل رو که زیر پتو داره گریه میکنه ر مریم فقط فاش شده، گوشه رو سریشو چنگ زده و دهنش بازه بازه و فقط به ناکجا نگاه میکنه آخر سرم میشینه و میره سراغه پارههای دفترش کجا؟ کجا میره؟ حتما مریم میدونه رزا اینجور بقتا کجا یه ماه خوب یه نردبون بلند ها رضا بریم بچه خوابید گلدونم من گذاشتم تو آب نقاشیارم چسبونم همش چسبی خوب شد خوب شد رضا؟ مرگم با یه خورمالوی خوشگل و خوشرنگ پایین نردبون به بالا نگاه میکنه. پاشو رو اولین میله نردبون میذاره. خرمالو به دست خودشون میکشه بالا. رزا سر کارم رزای سابق نیست تمرکز نداره و حواسش جاهای دیگه است. مریم که پشت میز رو روبروش نشسته دست کمی از اون نداره دیگه هیچ کدوم نمی نمیزنن حتی به هم نگاه هم نمی چرا نگاه میکنه؟ اما بدون برق چشماشون می گفند همیشه رضا نگران مریم فکر کنم مریم باش قهر سرای همون سیریه دیشب. مریم یک گوشه نشسته دفتر نقاشش رو پرق می بود دست می کشه رو چسبایی که رو برقا چسب بود رزا داره کاغذهای تبلیغ و به پلاستیک های کریم آقا منگی نبزن. اما هر دوشون منگی سخت ریاضی با امیرالی همیشه حل میکنم با هم آره سخت خان نازم گفت خودش دیکده میگه به سوهل. خانمه خیلی خوبیه مریم رخت خواب سوهی رو پهن میکنه به دقت روی روبالشتی اونو دست میکشه و پارچش رو صاف میگه خدا اون تبلیغ دندون پزشکی رو نشونه مریم بیده یه کوچولو بخان؟ بخند جونتوه مریم که میاد دست بکشه رو دندون های کاغذی رزا انگشتش رو میبسه مریم رفزنه رزا رو قدم به قدم دنبال میکنه و دریک از این که لبخند کم رنگی رو یه این جنسایی از تنگاره بردار ببین چشم که از مغازه خارج میشه کریما همش نگرانه که نکنه از کوچه رد میشه با ماشینی موتوری چیزی تصادف کن اله عل مریم سلام نهی مطنون قاهرا بیاد خدا هارزا مشغول جمع توی خونش نوشتن ما طلاتم دست قبلی نه دست جدیده بگو. <تصفح> خانم اجازه؟ نه خانم خانوم دیکته رو نمیگی. پس چی؟ خانم این لباس خیلی بهتون میاد. انگار خانم کریمی برای اولین باره که همچین جمله ای میشنوه. یه پیرهن زمینه بنفش با خطوط مدور سبزابی. خیلی قدیمیه نه؟ واسه قدیمیه. سلام سلام سلام سلام, سلام. سلام. مرضیه. تمام حواسش به ناصره که با یه آلام روزنامه میره تو تا چای میخوری ناصر نه حاضره تغییرش نیستی ماما ماما چرا شروع شد سوهی با دقت تمام حرکات خانم کریمی رو برانداز میکنه مرزیه میره سمت کت ناصر انگار بوی رو احساس کرده قیافش تو هم میکشه خالص امیرالی از نگاه های متوجه مامانش میشه خانم کریمی کتابا میذاره و به سرعت میره سمت ناصر و در حالی که دود سیگار ناصر از اتاق پیداست در اتاق اتاقا میبنده بازم تو کوله لباشک داری؟ بله بله دار لباشک من زنه حامله است چرا ربطی داره دیبونه؟ دسته درده خوهر سوهیل الاهه با چهره بی حالت و بیخبر خبر از همه جا از اتاقش یک راست میره سمت یخچال و شیشه آب و سهر میگشه. تمام حواست سوهیل متوجه اتاق خانم کردنی. هوا به تاریک میشه. دیره دشت مگه ای مگه برای بردیشت بازی کنی؟ سوهیلی که برمیگرده سر میز نبینه امیرالی دفترش رو برداشته و داره املاش رو نگاه میکنه. نگاهی به امیرعلی میندازه و رو پس میگیرم. خانم کریمی با یه عالمه نیازمندی‌های روزنامه از اتاق میاد بیرون و پرتشون می‌کنه کنار یخچال تو کاخذ باطله روزنامه رو برمیره که به دقت بخونندشون که کجا؟ اون چیه؟ الان یه ورق قرصی که تا نصف قرصاش خورده شده. خانم اجازه کلافم کردی سلیلمه گفتی خانم اجازه. خانم فقط اینجا بمانیم. میشه شما بشیم؟ یعنی چی؟ همه بچه های مدرسه پسر های من میدیم تو مدرسه بهتون نگیم مامان تو رو خدا سهيل، ببیم تو هم پسر سهيل برای اینکه دیگه خانم کریمی بهونه نیاره میپروان رو میبوزه خانم کریمی که زبونش بند اومده بهت زده یه نگاه به سهيل میندازه و یه نگاه به بسته قرص مریم گوشه تلفن دستش و رضا در حالی که دستگاه منگینه رو رو پلاستیکا فشار میده چشماش از فرد خود داری شدن دو تا کاسه خون اشکاشم دم دمایی سراسییه بعد بعد میشه به این بهش باباش اشتباه کرد فد. اشتباه کردی رزا مم. اشتباه کردی نه چرا چرا ساهیل زدی خ... من باباشم شا... چرا نباید شب بیاد خونه سوهل چرا شب نباید بیاد خونه همه باید تو خونه خودش بخوابند همه بچه ها باید شب پیش پدر مادرشون بخوابند اح. این موقعی شبم هنوز خیابونا شلوغه شلقن مدام حرفایی رو که میخواد به سوهل بگه هی با خودش تکرار میکنه و همینطور میاد وسط خیابون حواسش نیست که مرگم میترسه از خیابون رد شه مریم سر جاش کنار خیابون فقط رو خودش می جن بخش دیر خواهد مامان داد دری بر چی تن مامان داد دری بگه قلب کردی نفتی باشو خونه. چم باست نخواهی قلب کردی داد دری رزا وقتی میرسه اون طرف خیابون تازه پشت سرش رو نگاه میکنه و میبینه مریم هنوز سرجاش باید ساده و داره وحت زده فقط ماشین رو نگاه میکنه مید دوی سمت مریم تو ات شدن از خیابون جلوی ماشین رو پرش بیا با چشمایی پر از عشق همش به بالا نگاه میکنه و تا میاد چیزی بگه چی نمیگه بیچی نمی حالا مریم تونتون و جلوتر از رضا تو پیاده روی خلوت سرش رو زیر انداخته و فقط میره فقط مریم مریم نفسی نفسی نفسی نفسی نفسی آبرمون میره سوحی سوحی یه درگه باش سم شما اینجا بایستی سادی؟ بریم مالا بیا بابا من که ازد مذارت خایی کردم الان خوب دواره مذارت شما بیاییم بریم بالا اصلا باباش اجازه نمیده شب جایی بمونه حالا شما بکره بچه ها شب باید بله خودشون در خارم نه نه چیزی نیست ببخشی که این مذارت مخالف همون شد مریم جون بچه هست الان یه چیزی میگه فردو یادش میده بچه ماست سلام سلام علیکم شرتم بخیر خمسه ایو گفتن که این صورت جلسه رو بذاریم به تابلو بله ببخشید شرمنده سر رساده شده الان دیره مارين. باید مادرصادق من هر روز دارم با 700 تا سر و کله میزنم زبونش رو به سر از نمی‌دونم عزیزدلا ما خوبه رضا تو چی بگو رضا هم با گردن کج و سر پایین از کنار پنجره های مهروموم شده یه بانکی با چندین قدم عقب تر از مریم به سمت خونه مریم گاهی برمیگرده و نگاهی به رزا و دوباره به راهش ادامه میده می مریم تو آشپزخونه کنار اوجاقباز دو شوله که دیگه صدای جلز و ولز و روغن ازش بلند نیست و بوی کتلت خونه رو پر نکرده بای ساده و زل زده به قطیه های رنگ که روی میز گذاشته لرزش دستش بیشتر شده با احتیاط قطیه فلزی رو برمیداره و روی قفصه بالای اوجاقباز می زاره. و همش تکرار میکنه نمیاد خونه نمیاد خونه قوری توپل قدیمی گل آخرین چیزی که رو قفص جامعه ده با دقت زیادی تراز قوطیا رو وارسی میکنه همین که صورتش رو میچسبونه به تخته قفسه تا ببینه قوطیا دقیق کنار همت قطره عشقی اجازه از چشاش سرازیه میشه مریم مریم اون هاشیی رو انداز قفصه رو اینقدر محکم نکش عزیزم صافه همه وسایل از روش می هم... همش هم تو، توه تو همش، منش منش منش رو توه, همش... همش... توه. روی تلویزیون نشسته و دست داگی میموش کردش و بهم میکبه مریم میاد جلوی تلویزیون وای خیلی بدی تو خیلی بدی خیلی کار بدی کردی نوید نوید میزدیش سوهل نوید سوهل میزدی چرا زدیش؟ مگه چی کار کرد؟ ها؟ نقاشی من بود به تو چه؟ من باباش هم تو بلد نیستی پیتزا درست کنی؟ خانون نازم بلنده خب نه اومد دیگه محریم یکا جلی تلویزیون خاموش رو زمین میشینه با میره تو فکر از چرا همهشون پیتا دوست دارم منم دوست دارم تو همش کتلت میپدید نم خسته شد نیمان تو همه میخواستی خانون زنت بود؟ رزا که زون زده تو چشای مریم میاد دستاشو بگیری که مریم به سرعت جاش بلند میشه و تمام پلاستیک های آخا کریم و با اون تبلیغ های دندون پزشکی لگت میکنه و میره میرون مریم رضا تنها یه نگاهی به سقف میتزه یه نگاهی به رخت خواب خالی سایل مرزیه زیر نور ملایمی تو آشپزخانه نشسته و به امیرعلی و سوهل که توی سالن خوابیدن نگاه میکنه. ناصرم روی تخت و اتاق زیر نور آباژور دراز کشیده و اونم وازه افکارش نامعلوم فقط سیگار می‌کشه. امروز برعکس همیشه رضا و مریم زیر پل هوایی منتظر مینی شده بودن. مریم روی جدولی کنار انقدر بزرگن نشسته بود و رزا سر سرپا وایساده بود فقط زمین رو نگاه می‌کنه. امروز انگار هیچ ماشینی از اینجا رد نمیشه. همه دیگه میدونیم تحریمه تولیدمون کم شده ایشالا درست میشه همه این بسر وضعیت زن حامله از همه بدتره حالش به هم خورده اما هیچ کس حواسش به اون نیست بوشتون. بوشتون. آقا. آقا یه دقیق بشت کنده اخراجی آقا, آقا به من قول دادن که برمیگری سر کارتون حفظ من قبول نداری بنام. بنام. بس شما درک نکنم اوه مایس نمیشه رضا بمونه کار کنه من اجازه اش اخراج بشن به قرآن دست من نیست خیلی مننت نباش. به جونی یه دونه پسرم 10 دفعه رفتم میشه دکتر قبول کنه یکیتون بمونید سلام علیکم به خدا دست من نیست کار نمیتونم بکنم مریم از داخل حیات به رضا نگاه میکنه که بین جمعیت وایساده و برخلاف بغلیسته پوشیده فقط زن زده به مریم به مریم میگه برون برون همه حیفگه هیچ خبری از لبخندهای همیشه کهشون هست رضا به هیچ اعتراضی از بین جمعیت میاد برو دیگه تو مینیبوس از ثبت و بوق هیچ ماشینی که از کنارشون رد میشه به حیجان نمیاد فقط بیرون رو نگاه میکنه. بی بیشتر مینی مینیبوس خالیه مریم زل زده به سندلی خالی رضا کنار دستی رزا که همیشه چند دسته از قرصار و یواشکه تو جیبش میذاشت وقتی متوجه نگاه مریم میشه دستش که به سر جیبش میرسه یهو خشکش میزنه اما بعد از چند لحظه مطمئن میشه که مریم اصلا حواسش به اونو کارش نیست رو تو جیبش میذاره و به کارش ادامه میده مریم که به خودش میاد یه نگاهی به سندلی خالی همکار کنار دستش میدازه بد مشغول کار میشه یه عالمه ورقای قرص که روی میزش ریخته باید همه رو داخل بسته های مقوایی بذاره اما اون یه بسته رو که پر میکنه باز ورقا رو بیرون میریزه و مجدد همه اونا رو داخل بسته میذاره و این کارو هی تکرار میکنه. رضا پشت شیشه مغازه آقا کریم نشسته 700 مشتری نیست علاق می‌شی. کیم آل بجادی کار بیدار می‌کنی. کار ماله مرد خو. مرد اگر کار نکنه که خود کار یه چاقلی نمی‌بیسته. شیف گروه دو چی؟ مریم میاد خونه برگاهی درختات نمیخورن همه ساکتن فقط کبوتر را حواظ میخونن سوهی سوهی فقط خرمالوای روی درخت میونه این همه برگ با آدم حرف میزنم. مریم به دو میاد تو اتاق اما بازم از سویل خبری نیست این بار دیگه مریم باید تنهایی از خيابون رد یه عالم ماشین و موتور اما نمیتون رزا اومده پای مینی بوز تا سوار سوارشه و بره شرکت. و رزا تو دود اگزاز مینی بوز برمی کرد. کجا؟ از کجا باید پول بیاره؟ که میره یه طوری باش برخورد میکنه. اما اون که دست از جستجو داره. بر نمیداره. شما. شما کارگر اینجا. که حالت خوب نیست اینجا پیگ متدیه برو برو برو بیم رضا پا به دست آشپز نگاه میکنه که چطور خمیل پیزا رو ورز میده رو آمادی میکنه و مواد رو بشه بسید خمیل که پخش شد سوس روش پخش یه مش پنیر رنده شده، یه مش مخلفات کالباس و سوسیس خرد شده و قارچ و گوجه فرنگی و فلفل دلم. شما که هر روز اینجایی داغی عزیز. من پیک موتوری میخوام بدون موتوری که غذای مردم یخت می‌زنه. آقا جون، خوشت با منه. خوشت سالاد آماده نشه. چرا شو؟ آها. آیین آه. اه پنیر پیزا با پنیر همینطوری؟ چرا فرق داره؟ خیلی تازه هر پنیرش پنیر سوشی باشه خوشمزه‌تر هم میشه. دیگه رزا یاد گرفت تمام مرحله درست کردن پیتزا رو یاد گرفت اما اونا که تنور ندارن پیتزای خانم روی پاروی فلزی این پاروی نموی سنگکی میذاره و مواد میرن که پخته بشن آخرین مرحلم اینه که پیتزای پخته شده رو با یه کارد بلند و تیز به قسمت های کچیک بارش میزنن شب شد اما رضا هنوز تو مغازه کرمه ها تو کار میکن ها میچینه. اما رضا به چیزای بهتری داره فکر می‌کنه. عه. آقا. این موتور ریسکه تو انباری؟ راحتنم میشه؟ نه آقا رضا، نه. موتور با تو آدم سالمش هم خطرناکه. چاش کردم. آ آذی پنپضا کدومش اون فنش؟ بتره همش خوبه ا چقدرخور خورمالو سو چقدر حیاطتون با حاله؟ برشی؟ حالا بر اوننا راه نده بو میگیرن میرم اوه چی شده؟ در به من بیا؟ بیا دیگه ترسوم اگر نمیخواستی که افتران رو ببینی بیا دیگه نگفتم رزا رفته و اون موتار رو ازش گرفته یادشم نرفته که حدویج بخره. فکر کنم حدویجو بیشتر برای سوحیل میخره چون سوحیل عینک میزنه میگه برای چشمش خوده به با هون بالا کنار قفس کپوتا را گی افتاد قفص کپوتا را گی افتاد وای موتور چپه میشه کنار حوز و رزا و موتور میفتن و گلون سر حوز له میشه سوهل غیر از اینکه که چشماشو میبنده با دست جلوی چشای امیرعلی رم میگیره رضا همینطور درمونده کف حوز میشین خونه خانم کریمی همه بی صداشان میخورن خاش بگوازی کنیم اول ناصر بعدم که تلفن همراه الهه زنگ زنه و امیلیا هم طرف خونه شوجو میگم که خانم کریمی رو تو فکر می‌بینه بشقابش رو می‌بره میذاری تو ظرف شویی و میره سرو قبیل. بازی تنها میمونه و حواسش به ناصر. مریم این با کوکوی سیب زمینی درست میکنه نسرین عمه سهیل هم اومده. نسرین یه عالم قضا و چایی و ترشی و نونغندی براشون آمورده هر هفته فردا می اومدیم پس چرا امروز اومدی؟ دلم برای سوهیل یه ذره شده بود بردرزاده مثل بچه خود آدم می مونه نسرین نونغندی ها رو تیکه تیکه زرفت توی زرفت بسته در دردار می اما مریم توی دنیا گیازیه کلاس شالون خیلی سخته مهندس کارخونه هم خیلی سختش که تحل کنه با امیرانی حلش نشمی کنه بچگیش از بچگیشون اون دوست داشت الان هم دوست داره سوهیل هم دوست داره لا دفعه خیلی خوشمزه شده ها. <تصفيق> یه تیکه از کوکو رو برمی داره و میبره برای گربه تو حیاط. تیکه کوکوی داغ رو فوت میکنه و میذاره تو قوطی تون ماهی که شده ظرف غذای گربه. nazrin نمیدونه دونسه مریم برای چی. جلوی بوظشونو میگیره از این که وضعیت مریمو اینطور میبینه. به نظرش مریم رویش خیلی بدتر از قبل شده. چون من انگار هیچ جایی رو نگاه <تصفيق> من بچه خواهر مجید سربازش افتاد مشت طفلی مادرش خیلی دلتنگی میکنه افتاده مشت که بچه ها زود بزرگ میشه سوهیل هم بزرگ شده <تصفيق> انگار همین دیروز بود سر اسمش قهر کردی گفت یا سوهیل یا هیچی این زمان اتنامه سیدی پلیئره یادم رفتمش به رضا گذاشتمش اینجا ببین منو ببین زمان اتنامه سیدی من برم دم گروبی که کرش خیلی شلوغ میشه مجید میاد بعد خونه باشم بچه هم خونه تنهایم رضا با پاکت حویج میاد خونه و نصر این حرفشو نمیزنه اله چی گفتی؟ من نکوفی چرا تو گفتی تو گفتی من قرار نبود نگی ها چرا گفتی منو آبروم به قرار نبود بگی تو حرف نمیگی قرار نبود نگی قرار نبود نگی قرار نبود نگی حمایه پلاستیکای کریم آقا رو پرت میکنه و همشون عین بارون رو سر مریم میریزن رزامیرو باز مریم تنها میشه حالا مریم اجازه گریه کردن به خودش میده تازه تو همین گریه کردم پلاستیکا رو مزرور زمین جمع میکنم تو بقلش میکرم هق بزن مرزیه که داره برنج جوش خورده رو تو آبکش می‌ریزه با این حرف سوهی فقط بو زده نگاش می‌کنه. رضا، رضا رضا جو هوا خیلی سرده ببین منو ببین نه ترسه نمیتونه بیاد بالا این این دردبونه خیلی تورانیه دارم دمدمای پله آخر رزا دست مریم رو و میگشن بالا حالا هردوشون کنار کبوتران اونا اون طرف توری قفس و اینا این طرف. تو منو تنها نذار پیش وقت اون آقایی که ما رو عقد کرد یادت میاد چی گفت رضا کلاایمنی رو میذاره روسرش جبههای پیتزا رو هم پشت موتورش بسته و سوار میشه یکی هم که از جلوی مغازه دور میشه از موتور پیاده میشه و اون رو دست میگیره و کنار خودش میکشدش از بس این موتور سنگین و اینور و اونور دنبال خودش میکشه که دیگه نفسش بالا نمید از این خیابون به اون خیابون از این کوچه به اون کوچه دیگه پاهاش رمق نداره فقط اینا نیست وقتی رضا جو رو درمیاره در میاره زیر انگشتاش تمام زخم شدن پاهاشو میذاره تو تشت آب و مریم چندتا قطره بتادین تو آب میریزه مریم با یه پارچه سفید و تمیز میاد که پاهای رضا رو خشک کنه بیار این بیا. دلخوادم. بیا دلخوادم. بیا با با شو بیا. من الان م... الان خوب میشه الان خوب میشه من نه نه در حالی که پوست هفیجا رو میگیره به سوهیل نگاه میکنه و سوهیلم زیر چشی حواسش بخواه میکرد اینا رو مامال ایتا برده ها الهه گفت این روز اومده بود اینجا نا قوله تو بشکفتی من لبوش اکی تنها بود آره بابا ماهش نبود نه هرچقدرم ام مامالت که کردم بیاد بالا نه اینا چقدر مامالت لازه سوه میشه زنگ بزنی خونمون ببینید رسیده خودت زنگ بزن تو رو خدا کمالتونو بگو هفتاد و هفت خواه پنجه و یک چیو تو؟ تو. مامان میگه به علت به دقیقت بده ببینم. میشه با موبایلتون زنگ بزنی؟ خواهش میکنم از از در اومد. ناصر چپیده تو اتاق. این طرف مریم و رضا در حال درست کردن پیتزا. رضا فر اجاق گاز رو روشن میکنه ای تا حالا از این اجاق به جای میز استفاده میکردن تا فر بشه رضا و مریم روی پیتزا رو طراحی میکنند. با دقت تیکه های قارچ و فلفل دلمه‌ای و کالباس و گوجه فرنگی رو روی خمیر میچینن و یه شکلی باش درست میکنند. انگار پیتزا رو نقاشی میکن مریم اصلا به خانم کریمی توجه نمی‌کنه و به کارش ادامه میده. حتی صورتش رو از اون برمیگردونه می گردونه. خانم کریمی تلاش این دوتا رو نگاه می‌کنه و فقط لبخند می زن آقا شعباد. بله سلام شب بخیر شب بخیر آقا شواد ما مهمون داریم اجاده حتی چورت خورمال مالو بچینم بکن چه غذایی سختی هم درست میکنی کوک میخوای من چند دفعه اومدم خودم درست کنم تو خونه خراب شد دفعه میمیم کنی رسیده بود بعدش چیه رضا خود چون پنیر پیزا با پنیر معمولی فرق داره توی پیتزا هرچی پنیر بیشتر باشه خوشمزه تر میشه آره. بعدش چیه رضا قبل پنیر باید سوسیس کالباس باشه نه. چی؟ پیتزای پره پیمونی، پر از پنیر رنده شده و یه آینه مخلفات. ساسیجا، پیتزاتو تو فر می‌ذاره. اینم مثلا سنگینی داره باخت. نه، من چرا این موقع اومدم اینجا. سوهید منو فرستاد. امروز که تنها اومده بودی خونمون خیلی نگرانت شد من فرستاد ببینم حالت چطوره حال خودش چطوره؟ خوبه <تصیح> اکس سنا گرفیش هم گذاشتین اینجا چه هم خیشه آخی هفت ماهشه انگاه در سفت تا اون تولاد دو سالگیشه آخی چه تو بدن مکلمه نه دو سالگیش هرفت یه سالگیش تو درستشو میگرفتی راه افتاد راه رفت به تو باش تمرین‌کاری هفتاد دو سالگی‌ش بود. اینجا رفتیم مسافراند شما یاد یادته تو تو چند چند بار گفت کیش تام. شما نه تکی من با خودم نداختم گردن سوهی. چه گچلش کردین اینجا؟ هم <تصحیح> مو... <مواش> بیشتر بولهشه. نه. <تصحیح> <تصحیح> روز اول مدرسه که کوتاه کردیمش. عکس عروسیتونه؟ دست شما درد نکنه. چه کوچولو بودیم یادت اون چی گفت بهم که افتون کرد. یعنی یعنی. چه گفت مگه؟ گفت فقط فقط با هم بسرین مرزیه با همین یه جمله تمام افکارش به هم میزه همین؟ همین همین خب فقط همین کار فهمیده باید چیکار کنه بیا باید. انگار بعد از چند روز مریم یک هم لرزش دستاش و انگشت داشت شده یک هم لباش دارم به خنده باز شددا ببخشید میاد خونه آره چرا نیاد؟ بر خدا خدا بس. خدا رو شکر نفسش راحت تر بالم. اما اینجا باورش نیست نه ها ایسو نه میاد خونه. مرزیه که میرسه خونه بچه ها خوابیدن میره تو اتاق پس کجاست؟ ناسر ناسر بابت که لانه نمیم گنام همین جواب با, با, با ناسر ناسر میکا شکار شونی جوری استی. نه، صیغه میکشم. اوه. قبل از صیغه میکردی. لگابن از این گوشت نمیخوردی. قبل اینقدر نگران نبودم. از کار که میومدم و اینقدر خسته بودم که میخوام. یه سال من بیکارم مرزیه اینجوری نمیمونه من نمیتونم بعد از این همه درس خوندن برم تو ماشین یه رستوران کار کنم حلومه منم دلم نمیخواد این کارو بکنم. بکنیم یا که ما داریم هی از هم دورتر میشی یه کتاب می خواندم یهو سوهیل میبینه که باباش به دو داره میاد پشت پنجاره کلاس نیگرانه که نکنه بچه ها ببیننش ندخشید که بابات شدم شد هم سوه مثل بچه گروباقه بودی همه میگفتن مثل باباش هم. اما خوب شد یواش یواش مثل محجم شد قشنی خوب شد که مرد شدی بابا به مریم گفتن نه یاد تو تا مثل دوتا مرد مردونه هر سنه بابا خیلی خوبم هم به خدا وقتی نیستن میتونی کن بخواه که آقا رزا سریع از پشت شیشه کنار می رو و تکیه می به دیوار آبی کنار پنجا مریم هم اون طرف حیات بزرگ مدرسه نزدیک ده هوای ساده دفتر نگاشی جدیده تو پاره نکنی بابا کفترهای حالتو می بردن تو پشتی مقدشتی بیاتر بذن پشت گریه کنید بابا نه گریه امال مرده فقط سر دو بالا بگیم گریه کن چشمای رزا پر از عشقی او کار کردیم بابا مامان تازه پیدا کردی برا خودم من بودم یکم از اون طرف حیات اشاره میکنه که بعدی کفش یادت نره برنه کفشو یادم نه برنه کفشو دیر پا نمونه رضا حرفاشو که میزنه میاد جلوی که با صحی خدافز کنه البته بله. چون بچه ها مشغول املا نوشتنه هم هیچ کس متوجه بابا مرم آموزگاری می سوهب تو چرا نمی نویسی؟ چشم بالاخره مریم و رزا برمی خونه و همینطور حواظ سوهل ببونه رزا با چشمایی که کاسه خون شده بودن با لباس تو هموم نشسته و شیر آب و کرده تو کاسه نسی که اگه بغزش ترگید مریم صداشو نشن. و قشقاش بی سدا سرا میشن و رضا کاسی آبون میرزه رو سرا سورده همشب خانم کریمی کتلت درست کرد سویل با قضاش بازی میکن چرا چیزی نمیخوری سایلشون اگه دوست نداری چیزی که بت بد بدم خیلی خوشمزه شده ماما ماشیدون. خانم میشم یه چیزی بگی بگو عزیزم کتلت های مامانم یکم خوشمزه تر میشه پس حتما باید برم ازشون دستور پختش رو یاد بگیرم راست میگم مامان هر روز یه جو درست میکنم خیلی خوشمزه خیلی وقت بود کتلت درست نکرده بودیم و این کتلت چه جادویی داره انگار بعد از سالها از نگاه مرزیف و ناصر رو به هم گیره بزنه مریم که انگار دستاش بیشتر از قربش می تمام اعضای تکیه سوهل و دست جمعیشون از جلوی آینه و تو تاقچه جمع میکنه یکی یکی همه رو تو صندوق چوبی میذاره کنار شیشه دکمه رضا هم رفته تو رختخواب خواب خوابیده مریم انگار با هیچی نمیتونه لرزش دستاشو آروم کنه شیشه دکمه ها رو بر و دم میگیره رزا هم شروع میکنه سرخی خرمالو بابا سایه دل تنگی تو خانمی به می به میگی اینه که سوهیلو درست درستش کرد تا ناصر میاد بقیه سیگارشو بکشه نگاش که به سوهیل میفته تمومشو تو جاسیگاری له میکنه چقدر دستشیگی به پسر خوابت نمیبره؟ نه منم خوابت نمیبره بیرش بیرم از هم بهتر شد ممنون میدونو منیه اسمت چیه؟ یکم اسمه یه ستاره است یه ستاره که اگه بشه دیدش خیلی رشنگه خانم کریمی تو همون پیادروی خلوت آخر شب دست رو گرفته و میرن سمت خونه اونا ناسرم که چند قدم عقبتر کیف سوهل دستشه از کنار همون در و پنجره های محروموم شده ی بانک میگذره رضا تو رخت خواب سوهل خوابش بوده با مرگمند. پشت سر رضا کنار رخت خوابای ازام خوابشون عمیقه یا باور ندارن که کسی زنگ در خونشونو بزنه بیدارشین حالا مترم مثل مریم و رضا و سهیل راه افتاده چارتایی با هم دور حوز خالی خونه میچرخن و میگردن و صداشون تا آسمون هفتم میره خیلی خیلی بالاتر از قفس کبوترها قصه ما به سر رسید اما قصه حوض نقاشی همچنان تا عبد ادامه دار اینو کبوتری تعریف میکرد که پشت بوم زیادی دیده بود کوچیک بزرگ اما از پشت بومی که هیچ جایی بالاتر از اون نیست جایی که از اونجا تمام خونه ها با حوضای داشته و نداشته شون پیدان حتی اگه شنیدن این رادیو فیلم خوشتون اومده باشه من ملیح شبانیان نویسنده و راوی این رادیو فیلم به همراه بزرگوارانی چون علی حاجی نوروزی صدا بردار و فرشاد آزرنیا سردبیر و تهیه کننده تمام تلاشمون رو میکنیم تا لحظاتی پرنقش و خیال براتون بسازیم تا حکایتی دیگر از همین مردمان ساده دل بتو